بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل وصحبه أجمعين أما بعد سئزها من درس أسز درسها السور يوسف آية اليوم فرمودي الله جل شأنه وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إن لا نراها في ضلال مبين وقال نسبة في المدينة مزواب یوسف و زلیخا از دایره اون قصر و کاخ بیرون رفته در شهر زنها سخن از عشق عاشقی زلیخا میزنن سخنشون حرفشون در مورد ای هست که بین زلیخا و یوسف پیش اومده حالا می‌بخشید که ما زلیخا های تکرار می‌کنیم بر اساس اون چیزی که در تورات اومده هرچند اینجا اسمش الله نیبرده اولین مطلبی که در این آیه بهش اشاره شده بحث اون سخن‌هایی هست که میان زنا رد و بدل میشه قصه و داستان ها که راحت میان اونها منتشر میشه بدون اینکه تثبت بکنن بدون اینکه بفهمن که چی بچیه چون قاعده کلی مم. الله گذاشته اینجا کو به بنب این فتبینون اینجا نرفتن یا دنبال دلیل و مدرکی باشن که آیا اصلا این قضیه درست یا درست, درست نیست فقط یه چیزی شنیدن هر کسی از اون داستان یه چیزی تعبیر میکنه الان زنا جمع شدن و میان خودشون از اون واقعی که رخ داده در قصر از اون واقعی دارن حرف و سخن میگن و تحلیل میکنن مثلا رسانه های خبری چطور مثلا یک موضوع رو میگیرن بعد میان تحلیل میکنن ها منظورش این بود مقصود این بود این دستش بالا برد اون نبرد این نگاه کرد اون نگاه نکرد دارن تحلیل میکنن قضیه این ماجرا که این ماجرا از کجا نشعت گرفته و چرا نشعت گرفته خب یه چیزی که الان اینجا داره روخ میده غیبته حرف و سخنی هست از پشت سر اون زن عزیز مصر یه کاری کرده اینجا دارن نقدش میکنن زن زیرا کی هم بود نقد انتقاده. حرفشون حرفشونم حق نه که این کار بکنه نه این کار نمیکنه روش هست خیلی از ماها ها وقتی که نقد میشیم کار میکنیم. نه ما که نگفتی مثلا حرفی نبوده. نه اینجا ای زن این قدرت شخصیت داره نقد شخصیتش قوی هست به خودش اعتماد داره حالا چرا اعتماد داره خواهیم گفت؟ به خودش اعتماد داره انجام داده و انجام هم خواهد دادطوری نیست که مثلا. پس بزنه خیلی از ما تهدید بشیم اگر ببینیم که به ضرر منتقام بشه پس شاید بزنیم ولی اینجا نه این پس نزد زن عزیز اسمشو نگی بردن به شوهرش نسبت دادن چون از چشم شوهر می دیدن بعد یک مسئله ای که اینجا هست ماجرای ناموسی مثل کشته شدن و ریختن خون نیست یک فردی کشته بشه شاید اگر از یک قوم یک قبیله یک شهری، یک کسی کسی دیگه رو کش تابانشون فرد پس بده کشته بشه قصاص بشه تمومش رو رفت درش بسته میشه اون ماجرا تمام میشه ولی ماجرا ی ناموسی نه وقتی که دختری آبروی حیثیت قومش رو بخواد نابروشون بریزه حیثیتشون رو بخواد باهاش بازی بکنه اون دیگه خیلی سخت گیرون تمام میشه این مسئله مسئله روانی ها در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم زنی مرتکب زنا شده بود واضح بود اون قضیه در بحث اینکه اقرار بکنه وقتی که قسم شد که چون شوهرش دیده بود او رو در حال زنا ملاعنه پیش اومده بود اون زن انکار کرد خب وقتی که انکار بشه در ملاعنه جدایی رخ میده اون زن چی چیز مانع شد از اینکه اعتراف بکنه به اون چیزی که شوهرش داره گواه میده چون فقط در یک حالت یک گواه درسته در شریعت زنا در از 4 تا شاهد باید باشه ولی در ملاعنه نه. اگر مرد اون عمل زنا رو از خانومش ازش پذیرفته میشه در صورتی که الله این ملاعنه رخ بده اون زنه گفت آبروی قوم خودم را نمیبرم بیام آبروی حیثیت قوم از موزیر سوال ببرم ببرم دختر فلانی فلان قبیله و فلان ایل و نه سه ترو شو حاضر شد خودش جننه بشه ولی قومش حاضر شد که خودش تابون اون رو پس بده خودش هلاک بشه ولی قومش نه خودشو فدای قومش کرد بحث قوم و ارزش دادن به اون قوم به پدر به مادر برادر خواهر بالاخره آبرو دارن حیثیت دارن اون پدر چطور سرش رو میخواد تو جامعه بالا بکنه اون برادر اون خواهر خواهرزاده عمه خاله همون چطور میخواد سرش رو تو جامعه بالا ببره وقتی که یک رسوایی دوخری انجام بده اینو باید دختر ما بدونن یک خطا فقط کافیه که آبروریزی بشه و ابرو حیثیت کل قوم زیر سوال بره اینجا الان آبروی حیثیت اون بزرگان قوم فرعون داری ریخته میشه آبروشون داره زیر سوال میگه حیثیتشون امرائت العزیزی تراود و فتح عن نفسه بسل مرابده داد و ستت یه چیزی آدم بده یه چیزی بگیره خب این قضیه بین مرابده بین یوسف و زلیخا بود زلیخا تمع داشت در یوسف و میخواست یوسف اون چیزی که از خاصهای نفسانش و شهوتش هست براش برآورده بکنه برخلاف خلاف میل یوسف ترابد و فتق عن نفسی خاص بر خلاف میل اون یوسف یوسف نمیخواست در اصل اینجا باید مرد رقبت نشون بده یوسف کوچکتر بود یوسف یعنی شما که در نظر بگیرید جوانی یوسف سن بلوغ رسیدنش شهوت یوسف با اون زنی که سنی ازش رفته قابل قیاس نیست در اصل باید یوسف شهوت داشته باشه یوسف در غربت یوسف باید میل از خودش نشون بده ولی که اون کسی که اینجا داره میده به یوسف یوسف رو به طرف خودش میکشه کیه زنه بعدم گفتیم جو فراهم شده برای یوسف ولی که ایمانه که داره یوسف رو نجات میده اینجا در این قضیه و در این ماجرا یک مسئله ای که هست مسئله روانیه روانی می میگن تو دختر پانده پسر فریب نمیخوره یا پسر به طرفش نمیره یعنی تو جامعه اگر فسادی فحشای منکری ببینین اساسی زنا است و از میلو رقبت خود زنها زن میاد خودش را سوس در مقابل مرد نشون میده میلو رقبت نشون میده با چار تا خنده و لبخند میاد اون مرد را به طرف خودش جذب میکنه و مرد جرعت پیدا میکنه زن اگر حشمت خودش اگر پاکدامنی خودش اگر قوت و عفاف خودش پاکدامنی خودش رو بخواد نگه داره که کدوم مرد جرعت میکنه نزیک اون زن بشه زن اس سنگیر رنگین اصلا مرد جرئت نمیکنه نگاهش بکنه بس شخصیت زن خیلی مهمه اینجا این زهر معداره که اون یوسف از خودش عکس العمل نشون بده و بیاد به طرفش خب زنای شهر که درش یوسف بود چی میگفتن میگفتن که زلیخا در هوس بازی و عشق بازی افتاده شغف ها حبا یعنی حب و محبت یوسف قلب زلیخا رو اسیر کرده زلیخا شده اسیر حب عشق یوسف البته این قضیه اگر از یک دختر روخ میداد مورد نکوهش و مورد انتقاد واقع نمیشد این زنه شوهر داره این زنه شوهر داره زنی که شوهر داره دیگه نهایت نندگی و رسوایی از این که بخواد ارتباطی با یک نامحرم ایجاد بکنه این دیگه نهایت ذلت و پستی و خاریه نهایت فاحشه هست یک دختر اگر دست از فاحت او بکنه اشتباه بکنه میمونه که شوهر نداره قصد ازدواج داره ولی که این که شوهر داره چرا زنای که در دربار فرعون بودن انتقادشون این بود تو که شوهر داری چرا چیت کم بود چی کم داری بخاطر همین گفتن ان علنا راه في ضلال ما او رو در گمرروهی آشکاری میبینیم این گمرروهی واضحه این دیگه جای دفاع نداره هیچ کس نمیتونه از زن فاحشه دفاع بکنه یک زنی که شوهر داره بعد بیاد با حیثیت زندگیش بازی بکنه این دیگه نمیشه براش عذری تراشید اگر عذری بتراشیم عذر دیگه بدتر از گناهشه فعلا ما سمعت بمكرهن زن عزیز مصر زمانی که عذ موجريه انغيبت شنيد فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدل لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم و لما سمعت بمكرهم که از مکرشون شنی. چرا الله از ماجرای اون غیبت از ماجرای اون غیبت اون حرف و سخنی که پشت سر زن عزیز مصر گفته میشد اون ماجرایی که شاهد نبود برش یعنی در نبود این زن عزیز مصر دارن پشت سرش حرف و سخن میگن خب این میشه غیبت غیبت شرعی غیبت کردن هم که ما میدونیم جرمش و جنایتش الله میگه که حکم غیبت کردن حکم خوردن گوشت مردار برادرته. سخته حرام برات دیگه یک از بزرگترین حراما است غیبت گناهان هست است رسول الله صلی روزی از کنار قبری از انصار راختی را رد دو تا از بودن. بودند قالا انهم لا يعذبان وما يعذبان بمن كبير بل انهم اجل كبير اما احدهما فكان يمشي بالغیبه و اما الاخر فكان يلسنزه بدروجه لاستر من بول دو تا انصارا این قد جهاد کرده ولی با وجود عذاب میکشن. رسول الله میگه فکر نکنید به خاطر یه چیزی بزرگی بلکه بزرگه درن عذاب میبینن به خاطر اون دو تا چیز یکیشون غیبت میکرد د نما میکرده و یکی دیگر هم خودش از نجاست پاک نمیشست خوش از نجاست دور نگه نمیاشت چون نجاست وقتی که بر روی لباس انسان باشه نماز انسان مورد قبول واقع نمیشه خب این گناه گناه های دیگری برای شخص مترتب شده. ممس سمعت به مکره این غیبتی که داره رخ میده الله اسمش گذاشت مکره چرا اسمش گذاشت مکر اون غیبت چون در غیبت تخریبه. تخریب تخریب شخصیت حیثیت آبرووی شخصه چون وقتی که مثل بلفرض من؟ یه کسی بیاد پشت سر من حرف بزنه یعنی خیلی مثلا بالفرض اولاد تو خودمون آمیانه میگن خیلی مثلا شیفتهی مثلا جمال من بوده که رفته مثلا اینجا پشت سر من حرف زده نه یک هدفی داره برای خودش، یک توتویی هست، یک نقشه ای هست که میاد یه شخصی پشت سری حرفی میزنه، یک توتویی داره میچینه، یک چیزی تو ذهنش هست. اگرم برفت چیزی تو ذهنش نباشه، برای که توتوی و نقشه بیچینه، حداقلش اینه که میخواد دل خودش رو خالی بکنه، اینکه حقیت را به خودش بده، حق را به خودش بده، برتری را به خودش بده. حالا چه برتری از لحاظ فهم. برتری از لحاظ مکانت اجتماعی میخواد به خودش جایگاهی بده خودشو بالا ببره با پاگذاشت روی سر اون که الان داره غیبتش میکنه این اصل غیبته که الله داره ازش به عنوان مکر یاد میکنه این اصلی که داره الله به عنوان یک مکر ازش یاد میکنه. حالا یک مسائلی هست که برمیگرده به این مکر جالب اینجا گفت فلما سمعت شنید از اون مک خب خیلی مسئله مهم چطور شنید. شو تو اون زن زن وزیری از وزرا امپراتوری مصره جایگاه بالایی داره میشه جاسوس نداشته باشه تعمی نداشته باشه تو اون جمع اون خبر به گوشش برسه نه این گوشزدی برای من و شما که در هر مجلسی میشینیم به اعتمادی که اگر به هم داریم بدونیم که شاید یکی از اون جمع پاش بلغزه یکی برای کسی دیگه کار بکنه یکی برای کسی دیگه کار بکنه ما بشیم تعمه هلا ما سمعت شنید خب چطور به این جایگاه رسید؟ یعنی این زن تونسته در میان زنها برای خودش آدم داشته باشه که براش خبر بیارن ما بدونیم اونهایی که برسر قدرت نشستن آدم میخرن این زن برسر قدرت نشسته آدم خریده برای خودش که براش خبر بیارن و خصوصا این خرید و فروش و معامله بین اشخاص در دربار که روخ میده بر سر اختلافه این قاعده ننگ انگلیسیه. فرق تسود افتراق و اختلاف به انداز و از اون آب گلالود ماهی بگی. قاعده کلیه من و شیخ فلانی با همدیگر بر سر یک مسئله اختلاف داریم بر سر فطره مثلا این میگه پول بده من میگم غذا بده این اختلاف یک کلاخ چل کلاخ میشه بین اشخاص بعد تبدیل به سازی میشه صفحه سازی میشه به ترتیبا یک صحنه براش ایجاد میکنن آه این دو تا شیخ اصلا به خون هم دیگه تش همدیگه رو قبول ندارن انگار که امپراتوری فرس و رومه که به جنگ همدیگه اومدن یک مسئله فقهی ها خب این صحنه تبدیل بشین مثل یک صفحه پاپوش ها این شیخ و شیخ دیگه قبول نداره اصلا نه علمش رو قبول داره نه اخلاقش رو قبول داره اصلا اون یکی رو و این یکی میانه رو و این یکی خوبه این یکی فلانه این برای خودش هواداری پیدا میکنه این برای خودش هواداری پیدا میکنه در میان این اینها اشخاصی خبر رو رد و بدل میکنن تا اینکه به بالا و بالا و اون صاحب نفوذ صاحب قدرت برسه صاحب قدرت هم میاد از اون قضیه و جریان برای اسیر کردن اون دو تا شیخ استفاده میکنه ما که شنید این خبر داریم از اون چیزی که شده بخوای فلان نکنیم ما فلان کار میکنیم یا تهدید میکنن اگر تهدید نکنن یا رشوه بهت میدن یا باج بهت میدن صاحب قدرت صاحب نفوذه میخواد از سو بهره برداری بکنه برای قدرت خودش حالا میخواد هر کسی باشه هر ارگانی هر حتی در یک مدرسه همین قضیه رخ میده اون مدیر میاد این کارو میکنه بین یا در یک شرکتی مدیر این کارو میکنه بین افراد زیر زیرمجموعه سر شرکت که خبرهای زیر دستانه خودش رو بشنوه و بهش بیارن این یک قاعده مدیریتی یا در علم مدیریت میخونن اونایی که لیسانس مدیریت دارن این قضیه رو خوب میدونن درک بکنن که از قواعد اساسی علم مدیریت اگر میخوای مدیریت مدیریت بکنی باید دو به با همزنی بکنی تا اینکه بتونی بر اونها سلطه داشته باشی دو نفر به هم دیگه بزن تو اون شرکت تا این خبر اون باید بیار بیاره هم خبر اون بد بیاره همدیگه رو برباد بدن این قاعده کلیه و این سیاستی هست که اینجا این زن عزیز مصر داره به کار میگیره که تونسته اشخاصی برای خودش در اون جمع زنا داشته باشه که براش خبر بیارن خب این زن زن داهیه و زیرک و توانمندیه وقتی که شنید ارسلت و واعتدت لهن متکا رفت اونها رو خاص به این که به یک مجلسی حضور پیدا بکنن در یک مجلسی اون زنا رو خواست دعوتشون کرد ازشون پذیرایی و مهمانی کرد و گفت که بشینید بالشتی هم آورد چاقویی و, چاقوی و میوه هم جلویشون گذاشت متکای هم بالشتی هم گذاشت بغلشون و اتت کل واحده منهن السکینه هر کدوم از این زنا هم چاقی به دستش داد و قالت تخرج علیهن اونجا به یوسف گفت الا تو بیا بیرون میان این زنا مکرین زن رو ببینیم فلما رأي نهو اکبر نهو و قطعن ایدیهون فلما رأي نهو اون زنا وقتی که از جمال یوسف دیدن از زیبایی دیدن دستاشونو بریدن، زنها ما تو مبهوت یوسف شدن با اون جمالش و قلنا حاشا لله اون زنا گفتن این چی خلقیه الله چی آفریده ما هذا بشر اینکه بشر نیست این هذا الا ملکون کریم این فرد فرشتهی از فرشتگانه ملکون کریم سن الله وقتی که تشبیه میکنه زشتی جهنم و بدی و بدشویی و ننگی جهنم میگه طلعها کانه رؤوس الشیاطین و آتش و ها و اون عذابهای جهنمی الله تشبیه میکنه به سر شیطان شیطان زشته چیزش اشش کرده معصیتش خلق الله جزش نیست معصیت انسان را زشت میکنه عفت پاک انسان رو زیبا میکنه و این زیبایی را زیبایی معنوی و زیبایی حسی را این زنا در یوسف دیدن و گفتن و تشبیهش کردن به فرشته این یک فرد عادی نیست بلکه ای فرشته از فرشتگانه همینقدر فلنک دفاع میکنی و صل الله علی محمد و آله محمد